بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد بالله رب العالمین و الله الرحمن سیر و عالم و آل الطیبین و طاهرین المعصومین و معفض درمت علی اعدایه مشمعین اللهم نافقه ناجمی المشترلین و حمد رحمت که آحمد از تو هم مرموم شیخ و هم در کتب احل سنت و هم در کتب تفسیر کتاب هر رسانت این بحثه بریم و هم در کتاب تفسیر و هم در کتاب لغت متعوض تعریف قیبت شدم و ما یکی از روز بحث کلمات استاد رو خوندیم، ناقص خوندیم کلماتی ایشون رو عبرم کامل میکنیم علاوه ایشون اضافه بردیم ای که یک رو در تعریف موضوع قیبت رو بعدم با عنوان تنبیهاتی نرمه کردن که اینم باز برمیگرده به موضوع حدود و علیه تا تنبیه رو با عنوان تحقیق موضوع قیبت عوردن ارز کنم که من چون در بحثه گذاشته خوندیم و دیگه مخیم خیلی تختار نشده فاصله زمانی شده برای بسیار درست بحث یا داوری بحثی بحثه متعوض کلماتیشون از اولش میشیم و که فعلا تا آخر میخونیم بعد متعوض میشیم که کدا میشیم میشه قبول کرد میشه قبول کرد و اصولا قبل از اینکه وارد این اختلاف در تفسیر میبند به حاضر لحفت اون ریشه بحث و اسباب بحث که اصولا شای اینجور بحثا پیش میاد و منشهش چی بوده و بعدش هم نقاط مورد اختلاف مثلا یک دو سه اون چی مورد اختلاف، اون نقاط رو همینشالله متعرض میشی که بعد نتیجهگیری نهایی بشه مرحوم شیخ حمید اینجا نقاط علاقی با تو اسم که و مست دارن ایشون اینش رو میپرمنی که وقت علاقی خلاف به احرام مرحوم استاد برای آرام مرحوم ها کلامیشون رو میخونیم یکی دوست مناقشات کوچی در عبارت میگیم بعدم کل بحث رو بارد در وقعا الخلافی تحدید مفهوم غیبت و بیان حیقتا فالمردی من الخاصت والآمنه دارن سنیا دارن ما سنیا رو از کتاب درور منسوخ خوندیم اگه یاد رو بایدون باشه شیعه هرم از کتاب جامال احادیست و المعروف بین و بین احل سنه و بعض اهل لغه اندر قیبت ذکر الانسان دو ما یک و هو و حقم. اون که انسان نراهد بشه. از کلم قیبت در کتاب های متعددی مطرح شده. تفسیر قیبت به لحاظ ها. مثل کتاب اخلاقی ما هم. مثل فرس میراج ساده اینام آمده اما آناشون هم اخلاقی رو در نظر گرفتن دنبال اونجا است که مثلا صفات زمینه ای نفسانیه. حالا با غیبت قیبت باشه یا نباشه بر حک مصندف هم من قارب به عاصل و ان حشمور اخبار متخابقار على ان نهایی قتل غریبه ذکر رو غیرگی به میتهول و, و س. بعد مردم استاد طرنه ولکه که تعریف لا از جعل معن مح هستند فعل من المرادر در موصولفی هو از ذکر ذکر که ااخاب به سوفون حاصل او و به ذکر به ذکر لای خود ذکر رو با رضا بیم دخل تعریف به تعریف ماله به قیبت این قطعا یکی اگه یاد مبارسون باشی یعنی چند هر سوی فاصله شد این قطعی که یه قطعیه قطعی, قطعی این سال خود ایشان قطع پیدا کردن یک سیار با خودشون ازاکر حلمقولفی که ذکری بعض به فعل بعض مباحث بل و بعض المستحبات من المواظبه و القياس ولا اسكار القيام على النوافذ والابواب بل التزام زیارات اطاء و حالا کسی ناراضی ناراحتی میگه من حاضرستم کسی گناهشم میخوره از این احتمال داره غیبت باشه یقینی ایشان کجا ایشون میگن این غیبت نیست نه اون روایتی که رسول الله فرمود که یک به لحاظ لحظی اصلاح داره حالا همین محل کلام هست کچه هم از نقاط اساسی این بحث تشریح موضوع هم همینه که آیا ما به عرف و لغت برمیگردیم یا اینجا اون تصرف شارع هم لحاظ میکنه این یکی از نکات. از کاره داره یکی از نکاتش اینه وقتی شارع میگه ذکر رو که اخا حالا من ناراحت میشم که سیگه من نماشتر میخونم نوراخت میشم اصلا وقتی یه جاث مخت نمیخادم جهات این باشه که اصولا مثلا ممکن بگن من نماز شری بخونم بعد ما رو دارن خمس دار برای یه جایی بگم بیا امام جماعت بگیری حال فرضم جماعت بشه من <تصفح> با وساد مخدم یه لوازم درگاه یه دیگه خب من ناراحت میشم از اینکه بگن این آقا داره فلان کار انجام میده بعد این لوازمش این است بعد یک دسته اجتماعی پیش میاد بعد یک چیزی پیش میاد بعد یک صحبتی بعد اذیت میشم واقعا اذیت میشه اینی که عایق رویم قطعاً غیبت نیستی از کجا قطعاً غیبت نیست اگر ما اصلاح ظاهری لحظه اول بکنیم، شخص ناراحت میشه. این مطلب رو بشنوه ناراحت میشه ولی او هرگز، او مستحبه، ای که حقه. خوب هم هست. این که هرگز. از آن خوبه محسوب میشه اون خوبه، که ناراحت میشه او جادی ناراحت میشه. داید نه؟ چه بگیم اینم می‌نویم؟ یعنی خوب دقت بکنید اون سر ریشه‌العصر من چون عصر سر. سر. شون ما بیایم یک چیزی ارتن قیبت یک چیزی شارن آمده دخالت کرده و فیلزا اگر ما در فیل موضوع, موضوع, موضوع, موضوع و قیبت رو بگیم هر رجه هر رو باید در نظر بگیریم. هم اون مقداری که ارفی هست هم اون تصاریخ چاره این نکته رو ازتنایت بکنیم هیچ کسی رو شما نعبود کنیم قیبت خب ممکن شارعه این قیبت هست معلوم نیست شاید بخواد توسعه بده آگو باعث و در اوتن به مکار من اخلاق شارعه موضوع رو مشخص میکرده بس اگه مشخصه چا متعرض تو در مثل بقیه مثل اقیل ساعت به دلوک شمس نمیاد که دلوک کیه دلوک یک اگه ماسم من با مثال می چون لا یحثه در قران آمده که حدیث چیزی نیست و لا یحثه بحثه کن بحث اگر لا یحثه یک مفهوم عرفی و شاره مرادش همون حد عرفی خود تصروت نمیگه دیگه رو ذکر کنه همه که گوزه کنه حفاظت و نه در سیره متشرعه و اینا در طول تاریخ ما احدی رو نمی دیدید دیگه محکمات بکنید چرا این که با... که, داره که مشکل که ایشون میگه قطعاً اینطور و علیه و تعریف المسکول تعریفون دقت هم بکنی ما باید ریشیابی بکنیم ممکن از اصلا شاهع مردس مرادش اینه که غیبت عبارت از شما سفاتیه که شخص داره غائبه اون سفات غائب رو بگید بدبویی نیست اون صفات غائب حالا دو تا نکته ریبع داره یک غیبت و غائب بودن به لحاظ خود شخص شخص حاضر نیست یک غائب بودن به لحاظ اون صفت است صفت حاضر نیست این لایق هم مثلا سعی نکنید اون چیزی که قائبه بیان بکنید لایق چون آیه اون که اولش اینه یا ای الذین آمنا و اشتنو كثيرا به نبلا ان به واقعا به این شروع میشه ولا تجستسو این لا تجستسو رازه نیز برای کار حرام باشه هی شما به این طرف خودتر این شب نماس شب نخونه این لا تجستسو که شما دیشن به شما چه مرضی بیشه حتی نه تجسس که خودشان بفتر فروره این دو سارو اما این ظاهرش تجستسه ولا تجستسو ولا یختب بعضا کن بعضا یختب خب یعنی ایشون حاضر نیست پشتیستر میشه این مطلب گفته باشه ایشون اخفاق میکنه این مطلب رو بعضی از اولیا نه هم که مثلا کسی این که نیورسی که این دوز اولیا توی, توی دعای کند و را آقادینا طرف میگره در خونش بفهم فهمیدن تو بعد این گفت که دعا کرد که بمیره اون شمه فرکی خب بعضی خوش نمیاد این چیزی نداری ارتضا میبونی تش و من لحمه اخیین عرض نکنن یعنی این فقط به جهت میتن یعنی میاد برگوشت برادرش در حالی که مرده است این مرده ظاهرن بخواسته این که خواهبه میگه این گوشت منه یعنی این حیثیت منه این آبروی من چرا میگه برای من برای من مشکل درست میکنه من نمیخوام مردم بذاره من نمادشم میکنم خب همین ببینید ممکنه در غیبت اون نظر اساسی به این بوده یعنی یک نوع ایزا ارم عزیز نی میخواد بگیم این فقط به عنوان ایزا است اون عنوان غیبت به هر حال هدف ما اینه که آخو میگن قطعا غیبت نیست این کجا قطعا غیبت نیست این قطعی نداره قضیه نداره کما ان التعريف المصاح به قوله اقطابه اذا ذكر به او من العيوب ایشون عیب زده که عیب باشه و خوبه حقون که در حیرات این عیب داشته باشه ولی اسمو علقی به این یکونو باز تعریفاً بالاخرست یعنی ایک سفر که نهاردخان دعویب هم نباشه اما راضی نیست که این سفر گفته بشه و امکان المراد من المرسول تعریف الاوصاف المزمومه ولی افعال قبیه. از صادره من المقبولفی و یقربه ها از تعریف متقدم من المسوا ناجی به تعریف المسوا سابقا میکردیم بعدم عرض میکنم خرج عنالقی به مالای شک و احدون کونه منها که ذکر غیر به امور المحرمه التي ارتکبه عن رغبت رغبت و شهر من غیر انیشمه از منها وی رغبت و شهر من غیر انیشمه از یک چیز غیبت بوده از میکنه مهم علنی بودن نه مهم نیست که اشم اعزاز دارند و علیه پلای و تل نه حالا پس کسی با رغبت و با شهوت کامل شراب میخورم اونی میخواد مردم بفرمانه این بازا قیبته ایشون میگه کده تن و غیر به امور محرمه علیتی التکبه رغبت و شهرت من غیر هنی از زمن من ذکر ها میگه این قیبت نیست در صورتی که اون تعریف شاملش میشه چی گفت این نیست؟ ظاهرش که قیبت همین هستن این که گفتن قیبت نیستی در روایات آمده اونجایست اون عمل رو نه که ان رغبت انجام عمل رو علنی انجام میده علنی غیر از رغبته برای اصلاح علنی شراب میخوره شما رو گفت این شراب میخوره این نیست چون قیبت بود قائب باشه این علنیه بگه قائب نیست درست می کنیم این که میگه اضافه علن حرام. ان رغبت المشهوره تن بدل يشمن ازمنها این بعد مثلا فرق این تفسیر غیبت باشه با اینکه غیبت نیست و عرض این غیبت خودش غیبت این که چون میگن غیبت نیست غیبت و تحقیق علی وقال انه لم يرد نص صحیح بود بله این یک بحث دیگری است این بحث مثلا روش بحث سالوت شو در ذهن اونوارتیشون مسئله بدل مقرر رو سنت اس نکرد که ما اصولاً تو مفهوم غیبت لازم نیست اگه ریشوها رو دقت بکنید یکیش اینه اصلا ما تو مفهوم دیبت لانسلز به رود برگر نمی‌تون روایت سعی نداریم بر این و احر. و ضابطش هم من ارث کردن هر لحظه‌ای که در لسان روایت در سال روایات و عدل شرعی بیاد و تصرفی از از شارع میشه هم همیشه من اوفیه اگر آب بخرد آب, بخر، آب معناش نان بخرد نان معناش حالا اگر آمد مثلا گفت نان بخرب، برد گفت این یا درین، شماش مالستون کرمانشا. این نان. خب این بحثه. اون, زد... بر... اون گردوی کوچیکی که بازونداد نان نیستن. پس میگه ما اونم نان حساب می‌کنم. بحثی تصرف نکنه هم کلمه الفاظ و هم بگیم به معانی عرفیش. لذا این راهی که ایشون رفتن، این راه فنی کاره. پس راه فنی کار اینه که ما باید درگردیم به معنای عرفی و لغوی و اضافی بر او ببینیم که آیا شارع تصرفی کرده توی این معنی و و لغوی یا نه الان پس این شد به و انیقال لم یرد نست خب اگر لم یرد باید برگردیم به تحلیل لغوی و در معانی لغوی عرض کردن حتی لغوی قدیم قبل از هزار سال می سال هم مرحله استظهار رو در لغت کار کردن هم مرحله تحلیل رو هر در کار شده. لیکن ما ممکنه الان این اصطلاحات رو نفهمیم. من یه مقدار روی جهد میخوام توضیحات رو عرض بکنم. نمیرد نستان صحیحون که تحرید مفهوم الغیبه ولا تعریف من لغه. چرا اهلاللغه که دارن؟ که یکون جامع دل افراد و مان هن الاریاد این دومونش روز نیست. اهلاللغه دارن، پیگرش دارن. و علا حضا پلابود من اخذ المتعقب من مفهوم غیبه و ترتیب الحب اگر ثابت شد که در لغت واضح نیست و در اصطلاحات هم در روایات هم چون ما در روایات ما یکیش اون که تعریفیست از رسول الله آمده یکیش بعض از تطریقات آمده همون قصه آئشک در کتاب احر سنت هست که ظاهرا این خانومی که در عصر یهودیه بوده کی بوده؟ ماریه ماریه نه که ماریه که مسیحی بوده اونی که دیگه که صفیه بنت هاییم نه اختر اختر ایشون مثلا که قطع کتاه بوده در حدیث داره که پیغمبر وارد شد آیشه چه چسته بیرون ره آیشه مثلا با دستش و با حرکاتش مثلا گفت که این قطع کتله است مثلا چینین چنان پیغمبر همون تو اخت... اخت... قیبت حالا با اینکه این کوتاهی یا بلندی قد یا امر معلومی چیز پنهانی نیست همه می‌بینن خود بخی اساساً اینه که ایشون مخا این رو بگن آیا واقعاً تصرفی از شارع به این مقدار شده یا نشده طلبد بن اخذ المتيقن من مفهوم الغیبه و ترتیب الحكم علی و هو ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه این عبارت رو ایشون از اون روایات عبدالرحمن بن سیابه گرفتن که انتبول فی اخی ما ستره الله علیه و اما ما فی المقدار زائد بله فیرجع الی اصول عملیه و غرض که راضا فی جمله بن روایات تازه این روایات ایشون یه ضعیف السند این روایات عبدالرحمن بن سیابه رو ارث کردیم شواهدی هست که بتونیم قبول بکنه در حامشش مقررشون دعوا دو. اون دواد این بود که یادتون باشه که بحث بعضی طولانیم دستور صحبت کردیم. اما قیمت آن تحویل فی آخریک ما ستره هول لاغری. و عمل مل را ظاهر فی مثل حدت و عجلف فلا و الباقیان آن تحو فی مالی سفی. این دو باید رو داره. بعد بله. این توضیح ما ستره هول لاغری. لکی من عرض کردم این روایت اولا وسط کلمه و عمل امر ظاهر از هر اختلاف نسخ داره غیر از اون اشارتی که کلام کلامی تقدم ایزن که احتمالاً ما ستره الله علی به قرینه و عمل امر ظاهر اگر این تته روایت باشه مثل حدت بلا عجله این ما ستره الله علی یک تصرف جدید در غیبته اصلا یه تصرفیه خوب دقت تو کن این حدیث رو مراد از این حدیث این نیست که حدیث استاد فرمینه مراد از حدیث اون یک بحثیست در خود قیبت این بحث است درانیشون توجه که این بحث هم هست و اون بحث اینه که اگر اینکه از عیوب خلقتی باشه برای انسان فس مثلا روی قسمتی از سینش مثلا چی نیه ماه سیاه مثلا یا مثلا مویی که روی خاصیه. این ما سطره الله علیه نه مراد در فعله نه این که مراد از اون فعل باشه بله بلیزام ایشون این بحث در این تنبیه سوم هم دارن که بعد متعرض میشین الله در کلمات ایشون و امر امرو ظاهر مثل حده و عجله اینا جز امور خلقتی هم انسانی توند اخلاق تندی داره یا عجله در کارها داره اینا جز امور خلقتین به قرینه مقابله میخواد این طوری که غیبت اون عیب یعنی عیب نه نه اینکه خیلی از صدر شده حرامی از صدر شده خوب دقت یه امر یعنی تکینی در بدنش هست اما این پوشیده لباس پوشیده نمیشه اما اگه این یعنی امر تکینی سه ظاهره به احتمالا این مطلب برده نه رو ربط آلوشه باشه چون در احرستان دارن که پیغمبر با آشه تو تا قیبتش کردی خب این کتایی قد اون سفیه که عمره ظاهره عمره کشدی نیست کتایی قد کشدی نیست درد میکنی لذا احتمالا اون اصلا از باب قیبت نیست خوده از باب ایزاه نه از باب قیبت. اما چوره باید داره فرده خبتی ها این طوره, این طوره. احتمالا این رواید عبدالرحمن و نازل بحث در نازل بح اون این که آیه در امور خلقتی که انسان درش دخیل نیست خداوند اون رو تعریف کرده در امور خلقتی هم قیاس سر نمی‌دونن اگر از این قبول بکنید اینطور میشه اون امور خلقتی اگر ظاهره واضحه مثلا موی سر نداره یا اپستان مو نداره یا مثلا گوشش اپستانش مثلا پاره شده مثلا دارن. خب اینا می‌بینن مردم می‌بینن اما اگر میپوشونه کسی نبینه اون غیبتی اگه این را قبول بکنیم میگه در امور تکینی نه در ارتکاب محرمات در، نه در افعال بحث افعال و اخلاق نیست امور تکلینی در امور تکینی که در بدنش هست اگر ساتر مصدوره و راضی نیست گفته بشه اون میشه غیبت اگر نه ظاهر و علمز همه میبینم این دیگه جورد گفته این مراده از اینجا این بحث گناه نیست گناهی که ظاهر گناه که ظ <laughs> اگر ما باشیم اون باید به قرنه امر ظاهر و مثل حدت و عجله این بله امر ظاهر تکبینیست و این معلومیش از این رو باید ما قبول بکنیم امر تکبینی باید که خودش اعلام نمیکنه، اون هم قیبت اگر شما ببینیم ولی اون تکبینی اختیار خودش خارجه پنهان کرده که مثلا پس مثلا نصف گوشش برده شده با امامه کلاهی چیزی پنهان میکنه. لاکن تفکیرم هست کاری هم از حرام جای نه خداون میتوتو قضاوت احتمالاً اون دو باید ناظر به این معنا باشه چون تصرف به این معنا یعنی مهم نیست در باب حیبر که امر طرف باشه این عمل خوب یا بده این یعنی عمل تکلیفی باشه خوب درست میکنه اما امر ذاتی نیست که این ما هر چیزی رو با وزن هم زگ اگر عمر تکلیمی پوشوندنی باشه این هم قیبتی. بله عمر تکلیمی زایر باشه. مثلا زایرش اینی که عبو نداره با مثال. اگر ذکر کلتی را عبو نداره نیست. ولی مثلا بگه من نارهد میشه از واقع ایزا امومن مستحبه الله این نیست. و به این تصرف اون فعلی که ام اون آیش انجام دادنست و به سطحیه قیبت نیست. چون زائر دیگه قصد زایر د شاید نقطه قیبت این باشه که مثلا با دستش با یک شکلکی با یک مثلا به نحوه احانت برخورد کرده باقصه ولی بگه آه مثلا این خانوم کتاقت دیدیم که فینفسه که قیبت نیست یک نحوه دیگه یا شاید سبقه ایزا بوده ای؟ بایده. بایده. یا احتمالا همین باشه احتمال که چون دیگه پشت سرش داری این کارو بکنی یه دفعه سفر قایده چون شخص قائبه قیبته این که ازمی تازه این تازه بنابراین اون رواست ثابت باشه خب اون رواست بیشون ثابت تمام تمامی مشکلاتی میگیم با شایده شوید هم خود رواست ثابت نیست اگر اون رواست ثابت باشه که پیغمبر با آیش فرمودن که قیبت کردی خب این احتمالات ایس بعد ایشون میگن و یا ایدو ما فیلسان عرب و غیره البته لسان و که از کت من ان الغيباء ان تتكلم بله خلف انسان مسئول این اول فرض کرده شخص مسئول باشه به سوء او به بایت همو لو صنع حالا اول ببین این معیلش میشه ان تتكلم خلف انسان مسئول یکی سوء باشه او بما يبو مترجم حالا استاد شون قبول کردین تدریب خب، یقومون ممکن شامل مصطحبات هم باشین پشت بگم کلان امر مصطحبه انجام میده ناراحت میشه من فکر میکنم حالا یواشاش هم میگیم احتمال میدم که این تفسیری که اده از لغمین او اختصاص به بیلسان عربی نداره یک جمعی بین مفهوم عرفی با مفهوم شرعی کردن نظر خود من ایم. یعنی نظر من اینه که شاید در مفهوم غیبت خوابیده بیان ای اصلا توش خوابیده غیبت اینه چون پیغمبر فرمو ذکر رو که اخاک موید اکره و لوسنه این رو هم به خاطر تصرف اضافه کرده خلف انسان مستود به سو این مفهوم عرفی غیبت او, او به ما یقومه و لوسنه مفهوم شرگیشیه شون اگر یادتون باشه ریشه من سابقا نعرض کردم یک نکته خیلی مهم در لغت عرب که اصولا تدریم لغت عرب بعد از اسلامه یعنی وقتی آمدن لغت عرب رو تدریم بکنن اینها مسلمان بودن و اون مثلا روایاتی که در ذهنشم از آیات و روایات بود اون هم منعکس شد پس بگیم در حقیقت ما تحلیل بکنیم بگیم به این قیبت و عرفیه به سوه یعنی به عیبی یا اگر سو هم نباشه یقوم و رو سمه این مطلب من سهار بلا ارس کلم لسانم ارده شرا ارس کلم مال غیبیشون من نباره من نبوشت بکنیم گفتم مال لسان نیست مال قبل از ایشانه ارس کلم مال دقیق میکنیم در بحث پس از کلام من مهم آوردن کلمات لغوی و علما نیست مهم اون تحلیل و اون ریشه پیدا کردنه همیشه در مخاصن کلمات قدما و قدما خیلی عجیب بودن حالا مهم ایده از مشاكل بود مثلا ایدهشون که موجز می نوشتن هر یک کلمه رو بعد از مدت ها فکر انتخاب میکردن هر یک کلمهشون با قول معروف شاخ مثلا صدها کلمه بود مثل همین کوهی اخت دریا میگن که وقتی تو دریا نسان کوهی اخت میبینه مثلا فرص کنه پنج متر کوهی اختی این در مدار پنج آب تو آبه همیشه اون قصدات بیشترش تو آبه اون قصداتی که بیرون میاد که این کمه در این خلمات قدم این جوریه. اون مقداری که میبینین کمه اون مقداری که در باطنشه بیشتر طور مقداری که ظاهر میشه به ما یقم مهول و سمعه خوب دخل کنی و باز هم متأسفانه مرhum اسطور مسیب خیلی آیون کلام رو کامل نکردن بله در کتاب لسان عرب کاملش اینطور و این کانه فی، ای؟ ما یابم هو لو و این فی، یعنی زمیر کنم به سو و ما یابم اگرم در او باشه حتی در او باشه، فینکانه صدقان حاوری با تو. و این تصمه کلامی سید رسال عربیشو نه اونهای خوبی و امکان کذبن فخوبل بحت و البختان خوب دقت کنی کداله که جاان نبی صلی الله علیه و آله، اون نقطه ایشو من اعرض کرد حسنشو برسیم یعنی در ذهنیت لغوی این مسلمان نکته رو کردیم وقتی که لغت نوشتن مسلمان ها ترسل سی یا عبال اصداد دو علیه اینه که شروع کردن تنظیمی ها خلیل وقتی ما ها شروع کردن و لغت کردن خواهی نخواهی اون مفاهیم دینی رو هم تو لغت داخل کرده این نکته مهم نیده اگر مفهوم و عرفی صرف بود که اخاف به سوه. فی این نکته عرفی این مایق و محول و سمعه ایز رو از رسول الله اضافه کردن حالا سوء آم نباشه ناراحت میشه بشنوی مطلب رو دقت کن خلف انسان محسود پس غایب بودن رو به انسان زدن به اون صفت دادن حالا اون صفت سوء باشه یا سوء هم نباشه اما ایشون ناراحت میشه یه هم مقوله است این خیلی لطیفه من ترجمه من هم ازت دقت که دالکه نبی این که جاهنبی مال زیب شه و الله خب میدونی شما محکوم و که نباید بگه جاهنبی عرف و عرفه دیگه جاهنبی معنا نداره که کدارک که جاهنبی معنا نداره این که جاهنبی مال این زیب شه صلی اللہ علیه و آله و سلویم خب دقیق بکنید و لا یکون ذالکه خیلی لطیفه و قیبت بگه صدق نمی کنه الا من و یعنی کعان غائب بودن شخص دخیل در مفهوم غیبت باشه. وقتی از خالصش در جواب به خودش هم حاضر است. شما جلو شدی این غیبت هست سوال. ان این بحث رو مرحوم استاد در تنبیه هشتم داره. مرحوم استاد در صفحه آینده بعد از زیر ورقه میشه این تذکیه مختصا ماذکر اهل منشو... مشهور من ان الغیبه که فی ما و یكره و سمع عدم صدق الغیبه مع حضور المقتاب اگر اون شخص باشه یه قیبت نیست بله حاضا هوا از ظاهر اونالآیه فه این تشریح المقتاب میته، این یا ان نماهوه لعدم شعوری رو ما و اما الان مازکرناهی تعریف قیبه خود استاد فلا پرقی انتباه بین حضور المقتاب و عدم <تصفيق> طرف حاضر باشه یا نباشه قیبته مادام یست و قبل القول نهو اظهار ما ستره الله علیه ده ما ستره الله اگر اظهار ما ستره الله شد دیبت علی خودشان حاضر باشه خوب دقت بکن در اباص لسان در عرب داره که ولا یکون ذالک الا من وراءه اصل تصریح داره شدریه این کلمه لغوی هم هست اصلا من از اول اگر خوب دقت بگه ارسلن که در کتب لغت هم آمده و یک ظرافت هایی رو در نظر گرسند ذکر این ظرافت ها همینش که الان روشن شد. معلوم میشه اینا چه فکر کردهن. مثلا میگه اگه بگم یه اگر شخص حاضره، یک عدلی انجام بده کسی خبر نداره چون دروسیه اتفاق شده. ولی شخص حاضره، اگه هر شخص حاضره باشه. اما این عبارت رساله عرب میگه ولا یکون که الا من ورائه. باز حتما پشت سرش باشه. اگر حاضر باشه بو با غیبت گفته نمیشه. بعدم گفته ولی اسماء الغیبه اسم مصدر گرفته. غیبت رو مثل جلسه و اینها اسم هیئت نگرفته، مصدر هیئت نگرفته. به عنوان اسم مصدر گرفته. بعد بلیانطبق یعنی و علیه جمیع تعاریف فقها، ایشون نصف کلام لسانی عرب نرفتن، بقیهشون و اهل لغه و اینکه تعاریف فقها ایشون میگن همین در خود کتاب اومده. چون این رو از رسول الله گرفتن این هیچی ما بگیم مثلا ادعای اجماع مثلا اجماعی است فلان یا مثلا فلان لغوی گفته هی ما میگیم اینا تعبد نیست اینا رو ما میتونیم موشکافی بکنیم میتونیم ریشیابی بکنیم اینی که فقها گرفتن تعبد نیست خیال نشه این نوع تعبده فقها عملا این کارو کردن یک مفهوم عرفی رو زمیمه کردن با اون قیدی که شارع گفته چیشون دیگه کلام نرم نکرده بعدم خودش میگه به کلاری که جوع النبی تصویر که اشاره گرفته اون قسمتی که اشاره گرفته به یقوم مولوسنه لکن یا المقدار المتیقن من مفهوم بعدی ایشون مقدار متقن گفتن تعجبه این یقوم مولوسنه حتما یقومو در ایوب مثلا الله اگه یقوم مورد ضاغین گفت ممکن یقوم مولو که این آقا شب پیش صدقه تعجب میگم کی در چند صفحه قبل قبول در چند صفحه قبل قبول نکرده نکرد اینجوری و توضیح و ماده کردنا به معنا ان ذکر الناس و تعرض او صاحب لا یخر انصب از سلاس از سوره اولاده کردن انصاب به مایوج تعظیمه و ترفیع ابو بین الناس یعنی اقول ان فلانا عالم و مشهور و یصل نوافل و اهل فقرا یه بر تا به مول مسیح مهوارش و من هم دارم از مداده ولی دیگه سرایت می‌نریم این شدن که نه بعدشون لسان که از اصلش هم لسان نیست و تاجر عروس آن ابن الاعرابی در بحث سابقه همون این عبارت ابن العربی بحث کردیم غاب ادازت کرده انسان به خیره اوشر. او شم حتی به خیره هم یه هم غابه هستان خدمتون عبارت ابن العربی رو با دیشون اولش هم کم آوردن ایشون ابن العربی عبارتش اینه اگه آن بخواهد زرسو کرده در نصف خودشون اصل عبارت ابن العربی در غاب وقتابه ایشون محال قابه ای که سلاسی مجرده با اقتابی سلاسی مزید بیگه معناست قابه بیگه است. بعد گفته وقابه دو مرتبه ازازه کره انسانم به خیلی اونو اوشه خوب دقیقه بکنید اونی که در کتاب از ابنه عربی نام کرده غابه رو که معنای اقتیاب گرفته ذکر انسان به و بشد لازم نگرفته نه متعدی خوب من وقتی در بحث در جلسات صابر صحبت می‌کردم گفتم غابه نه در کتاب ابن আরাوی در این کتاب غابه هست نه غابه احتمالاً مراد ابن আরাوی این باشه همین که مثلا بگیم غابه کلانو محئول نداره متعدی نیست قام فلانه یعنی یذ کرو شخصا آخر به خیلی نعوشم ازازه ذکر انسانه به خیلی نعوشم بوده قد پس بنابر این اصطلاح ای که در کلمات ابن عربی از سلاسی مجرد از آمدونه اختیار این خودش لازمه نمیگیم قاب زیدن قاب فلانه همین که بگیم قاب زیدون یعنی اقتاب شختان آخر اصلا قابه معنیش اینه که اگر یادتون هم باشه و یادتون هستن، من هیچ گفت هم خیلی مشکل این معنی ابن عربی ثابت باشه مگر از عرب شنیده الان ما این رو نمیفهمیم انصافا در اعتقادات عربی مون مثلا بگم قاب زیدون یعنی ذکر غیره و به غیبت این قابه اصلا قابه خودش پنهان شد اصلا قاب... غیب از می دیگه اما ثلاثیه و مجردش به این معنا باشه ما الان نمیفهمیم خود دقت بکنید مگر تعبد بگیم, بگیم بگیم ابن عربی رفته از عرب شبیه ذرب کرده این کلامی رو که ایشون از ابن عربی نقد میکنه فعل لازم هم گرفته اینجا هم متأسفانه بعضی استاد کلام رو کامل نقل نکردن قبل از اینکه در کتاب نسان عرب از ابن عربی نقل خوب دقت بکنید این مثلا من اون روز ناقص نارب کردن چون نایده بودن این دیده بودن کتاب لسان هم تحجیر نکردن در لسان عرب قبل از این که عبارت ابن الاعرابی رو بیاره این طور میگه و رویه ان بعضه انهو سمع قابهو اینجا متعدی آورده قابهو یقیبهو ایلا آبهو و ذکر منهو ما یسوعهو اینجا متعدیه حالا فقط ما نفهمیدیم این قابه و ادار ما در لغت عرب آب رو هم لازم داریم هم متعدی مثلا میگیم آبت سنره این میوه ای پیدا کرد. فاسد شد اینجا لازم متعدی هم دارید در لغت عرب میبه آب زیدن زید رو یعنی ذکر عیبا من ایوبی شیعا من ایوبی این آبه میمونه قابه اولاً غائب به این معنا چون غائب نختفا پوشیده شد اصلا غائب این معنا که ذکر غیر او آمده یا نه خود غائب و علی تقدیر اینکه آمده باشه به صورت لازم آمده میگن یعنی قاب زیدن ای ذکر غیر او في مثلا یا این هم متعدی غاب هو غاب هو میگن تنویر نظریه بونظور باشه ولی معنای تنویر نه خود به فیل ایشون میگه نقل رویان بعضی انده هون سمه قابهو از کلمه تکرار میکنم انصافن اگر گفته شده که عرب تلفظ کرده الان ما نمیفهمیم اصلا ما الان ارتفاع ذاتو عربیمون قابهو رو نمیفهمیم بی این معنام اصلا قابهو رو استعمال نمی کنیم قاب است. استعمال اقتابهو چرا؟ اما قابهو رو استعمال نمیکنیم الان و در کتابی بهشون میگه ازا غابهو و ذکر من هما یسوعه و ذکر به این معنی حالا البته عبارت ای این آقا هم مبهمه که مخواد بگه قابهو و آبهو به یک معنی است. یا مخواد بگه نه در وقت عرب اگر ای به کسی و مقابلش گفت میگن آبهو پشت سرش گفت میگن غابهو چون اون آبه مثلا متعدیه موسیقی متعدیه و از که بحثی سی سال قبل از همون هدار ست که دارم یه بحثی هست که یکی از خصائص باقت عرب فعل یک نوع ارتباطی با واقع پیدا میکنه یعن لبس رو از یکی همون کسات المبانی تا دار لعلا کسات المهانیشی تو مقدمات همونی هست یک وقتی من رو با من نمی‌دونم از اسامی نامکرم مال در کدوم کتاب گفت یه کشتی کوچیکی توی بلن کوچیکی توی رود لیژ گفتن به عربی ما هاذا قال خنده بعد همون نوعش بود بزرگ بود که همون همون کشتی که گفت سوالت ما هاذا سوال همون چون یکم بزرگتر بوده بود دیگه علیش مشه بعد اسماعی گفت فرنم تان کسات المباني صد الله علاكه این احتمال داره که مثلا شاید اون بعض نظرش این باشه چون غین رو میدونی بیشتر از نخرزی بیشتر میدن یک نوع حالت اخفاق بیشتر داره شاید عرب رو اون ارتکاز خودش اینطور بوده آبهو رو وقتی میگفته که علنی باشه طرف باشه قابهو رو وقتی میگفته پشت سرش باشه ولی من فکر نمیکنم لغت صابز باشه دوستا و از عجیبه که ایشاد نگاه میکردم مربوط از علی های مذهبی من هم از تاریخ کتاب رو اعتراض چام شده حقیقی شما آلا همهش چاپ شده بسیار کتاب خوبی در حد خودش خوبه البته نه خیلی خوب خوبه تا حد خودش نسبت مثل منجمال بهنه خیلی خوبه اما نه اون حد بالای بالا ایشون هم غابهو رو داره دیشت هم نگاه میکردم ایشون هم غابهو رو داره نه مگر از کسی داره بعد از اینکه این کلام این که این کلامه یقی سمه غابهو یقیبهو اضاعابهو و ذکر اصلا نمیشه ذکر ابن ورایی باید ابن ورایی اضافه از میکرد الا ظاهر عبارت که غابه و آبه بیگه معناه ظاهر ابرد اینه بعد از این داره که قال ابن العربی اونجا ابن عربی اما ابن عربی ابن در لازمه نه در متعدی غابه اذختابه یعنی غابه و اختابه به یک معنا گرفته بعد اینطور گفته و قاب اذا ذکره انسانم به خیر اوشم خط کردیم ای عبارت نعرابی اول شاید مشی باشه که قاب چون که متعدیه شاید اولش مشیب باشه که قابه را بهشو متعدی مناگرده درکه این دوممیش ظاهرش در لازمه پس اگه گذیم قاب زیدان خوب خوده اصلا قاب زیدون یعنی امن و وکره غیرهو من برایی به او اوچرد اصلا تو خود کلمه قابه این کامی بیر نزدن روشنی تو لو کار بعد داره ولغیبتو فعلت من خیلی عجیبه ایشون غیبتو اسم مصدر نگرفته غابه الهاده کره انسانن به خیر اوشر و فعلت من اینا رو های خودی نبردن ولغیبتو فعلت من معلوم میشه ابن اعرابی غیبت رو مصدر هیعت گرفته مثل جلسه جلسه جلسه الی اسم مصدر نگرفت اما توبه که خوندی اسم مصدر میشد گرفت پس یک نقطه کلام نعرابی اینه یه نکته لطیفتری هم داره که دیشون از طرز عرض بعد ایشون غیبت و فعلت من تکون و حسنا و قبیحا تحصیل داره که غیبت ممکن حسن باشه ممکن است باشه بعد از اینکه که آیه عبارتی این هم آیه خوبی نقل نکرد ای بات من نقل الا انهو اشنبیون هم المقام فه انهو غیر الاختیاب میگه ایشون آیه خوبی نقل نکردن اصلا میگه قابه ادختهاده ایشون میگه غیر الاختیابه قابه داریم به اختیاب ایشون توجه هم به آیه خوبی ابن عرام بخواست یه حرگم یک معناست ترمه میکنه ولوک یک خروج ها در سوران مقروم غیبه سوران سوا ها لکره مسئ کره نکره المقبول و فی همده روشن یاد پس معلوم شد که بعضی و حتی انزل لغوی گفتن قیبت سرخ میکنه بلو بر ذکر مستحبات قبیه او حسن حسن حسن این چی دیگاه رو خود فرمین این قطعا خارجه این روشن نشد حتی لغویه هم و سال الله علا محمد و آله تا